خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم درس امروزی ما شما در فلسفه یکتا است در فلسفه یکتا یک موضوع خدمت را نفض کنم که چپتر برای معزلین داره میشه تا در خانه خود ازو استفاده کنن لطفاً در سلف چپترهایتان را بسته کنین. Please close your chapters and class. Chapter written the front of the book was not the chapter name. Chapter the class for the students was mostly من خد به خد نمی خانم او را تعقیب بکنین خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلات و سلام علی على رسول الله صلی الله علیه و سلم امروز درس ما و شما در فلسفه اکتاب است اگرچه بسیاری از دانشمندان تانستن که به اساس عقل و دانش خود به اساس فطرت خود با وجود خداوند متعال جل جلوه ایمان بیرن ولی مشکل از دانشمنده ای بوده که احیانا در قسمت پرستش ذات خداوند متعال جل جلوه و با اشتباه مواجه شدن از این خاطر ما دلایل عقلی و دلائل قرآنی دارم که این دلایل قرآنی هم به اساس عقل انسانی برای ما و شما به که اگر میخواین که حقیقتاً خدای را پرستش بکنین ای خدا ذات واحد یکتا، بدون شریک بدون مانند قدرتش بلندتر از قدرت انسان ها صفاتش مقایسه با صفات انسان ها نمیشه قویست خدای زمین آسمان است نه تنها انسان ها را خلق کرده بلکه تمام بشریت خلق کرده نه تنها خدای مسلمان هاست بلکه رب العالمین است خدای تمام جهاریان است اگر روزی میتا، برای هر انسان برای هر مخلوق برای هر حیوان برای هر جنبنده رضایش رزقش میتا، برای چی؟ بخاطر ازی که میشه روزی انسان فکر بکنه شاید یک سال دو سال ده سال بیست سال بعد فکر بکنه و متوجه شو که عبر و باد و و خورشید و فلک در کارن. تا تنانه به کفاری و با غفلت نخوری در قسمت توحید توحید یا یکتا خود کلمه توحید از مصدر عربی وحد یو وحد یعنی کسی را شناختن یا یاد کردن و توحید در اسطلاح به بنای معتقد بودن بیگانگی خداوند در وجود خداوند، در صفات خداوند و در عبادات با خداوند متعال جل جلاله می باشه. یعنی ما وقتی که خداوند را یگان یاد باید خداوند متعال ما در وجودش بفهمیم که خداوند یکی هست. در صفاتش خداوند یکی از صفاتش مشابه صفات انسان ها نیست. و در عبادت هم اموری که با انسان با خداوند ارتباط میگیره عبادت نامیده میشه باید عبادت خاص به خداوند متعال جلجالوهو انجام بتیم چرا که خداوند متعال ذاتش است که میگه اگر کسی یک کار در 99 فیصد برمارو کنه و یک فیصد در قلبش انسان ها متراشه یا کس دیگه به خاطر ست فیصده برای جانبه مقابل خود نیتم من هیچ عمل کسی را قبول نمیکنم که حتی یک فیصد هم در فکر و عقلش خدا نباشه بلکه انسانها مطرح شده باشه از این خاطر انسان مسلمان اگر عبادت میکنه خداوند متعال 100 فیصد باید خداوند عبادت بکنه و اگر کاری را خاطر رزایت خداوند میکنه 100 فیصد کوشش بکنه که به خاطر خداوند باشه. قل این نسالاتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خداوند برش میگه که بگو ای پیغمبر این نسالاتی نماز من و نسکی و تمامی مناسک و اعمالی که من اجرا میکنم و محیای و زندگی من و مماتی و مرگ من لله رب العالمین خاطر خداوند پروردگار عالمیان است از این خاطر انسان موحد انسان یک تا است، همیشه کوشش میکنه که تمام اعمال به خاطر رضایت خداوند متعال جل جلوه باشه لطفا فاجانا کشن اگه خسته شدی در صبیله بسته چی میکنم یعنی که بخاله بشاو قلم زیاد دی از خاطر اون او تا دونتا برماواز نکود دونتا بسته کود عدد فاجا است که انسان وقتی فاجا میکشه حداقل کوشش کنه فاجا نکشه درصف و اگر باز هم مجبور میشه لطفا دست خود بدان خود بگیره که هر روز اگر من که تباشیر بزنم و واسه که در داخل بونن ترافتا خب در قسمت توحید خداوند متعال ما چی داریم اول آیات قرآنی هستن که به وحدانیت خداوند متعال جل جل و هو دلالت میکنن. خداوند متعال جل جل و هو میگن وقتی که مشرکین قرآش یا یک تیاد مردم کوجه بودن دیدن که نسرانی ها میگن که ما سه خدا رو عبادت میکنیم خدای پدر، خدای پسر و روح القدس بطپرستا، های متعدد را عبادت میکردن مردی اومدن پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلام پرسیدان که ای رسول خدا خدای و خدایی که ما مسلمانا و عبادت میکنیم برای ما معرفی معرفیکو عزت جبریل امین آمد و با پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفت که قل هو الله احد که الله ذات یکتاست الله صمت خداوند ذات بنیاز است لم یلد و لم یولد و لم یکن له احد نه از کسی زاده شده نه کسی از او زاده شده و نه شریک و همتایی داره بناهان سوره اخلاص یا سوره توحید اینمی سوره است که عقیده اساسی اسلام بر انسان معرفی میکنه که خدای که ما مسلمان ها او رو عبادت میکنیم خداوند یکتاست خداوند است که شریک نداره خداوند است که از کس سوالی نداره خداوند است که به پسر ضرورت نداره خداوند است که به پدر ضرورت نداره چرا به خاطر ازی که ضرورت ضرورت با به فرزند ضرورات به پدر ضرورت به شریک ضرورت به خانم این صفات انسانی است که خداوند متعال جل جلاله جل از صفات تاک است زیرا خداست آیاتی دیگه که برای قسمت بر شما راهنمایی میکنه میگه الله لا اله الله خدا نیست هیچ معبوده با جز او. آیات زیادی دیگه است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه که قل خداوند بر پیغمبر میگه که قل بگو ای محمد انما انا بشرون مثلکم نه انسانی مثل شما هستم یوها الیه صرف خصوصیت ماییست که به من وحی خداوندی مایه منعیس پیغمبر اما من مثل شما ور انسان هستم اینما اله کم اله واحد بدایی که خدای شما خدای یگانه هست فمنکان یه جلقا عربی هی هر کسی که میخواه که با خدای خود در روز قیامت ملاقات کنه و در روز رستگار باشه فلیعمل عملن ای ایبایت اعمال نیک بکنه ولا یو شک به عبادت ربی احدا در عبادت خداوند بطها و انسانها و اشخاص شریک نسازه و لا تدوم الله الهان آخر آیت شریف دیگه می که شما با خداوند خدای دیگری را دعوت نکنید. یعنی در وقت مشکلات در وقت درد و رنج همیشه زبانتون را کوشش بکنید که به محبت ذات یکتا باز کنین شاید شما مادرتان را دوست داشته باشین شاید شما پیغمبرتون را دوست داشته باشین شاید شما بعض از دوستای خداوند را دوست داشته باشین این محبت, محبت هاجده است حاب محبوب خدا خوب خدا است شما که پیغمبر را خوش دارین در حقیقت خدا را خوش دارین شما اگر اولیاء الله رو دوست دارین دوستای خدا را دوست دارین شما در حقیقت خدا را دوست دارین لکن گفه مهمی است که و الذين اشد حبا خب لله که ایمان دارن محبت بسیار قوی با ذات خداوند متعال جل جلاله دارن از این خاطر شما محبت بسیار قوی با خدا داشته باشین از هزار بارتان کرده هم ذات خداوند باید با شما پیشتر باشه از این خاطر وقتی که یک تفلک و مشکل مواجه میشه سلام میکنه مادر اما یک مسلمان حقیقی با وجودی که مادر خدا دوست داره با وجود از که مادر خدا بسیار دوز دارد پدر خدا زیاد دوز دارد لکن در مرحله رشد و جوانی و ایمان قوی زبان خدا بال با خداوند مطال خل خدا ارتباط میتونه که یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم او خدایا به دادم برس خدایا مرا تکلیف بده خدایا ما مشکل دارم مشکل ما حل همکم خدایا ما امتحان دارم در امتحان مغز ما روشن بگو دل ما روشن بگو تا که من بتونم این درسو بفهم همیشه ارتباط خدا مسلمان با ذات خداوند مطال جل جلاله قائم می سازه. فرق از بین خود شناسی و بین ارتباط با خداوند شاید خدا رو بسیاری کسا بشناسند زیاد مردم هستن که خدا رو میشناسن من مثلا یک وزیر میشناسم شناختی یک وزیر که فایده نمیکنه. ولی آیا ما با اون وزیر ارتباط دارم که در وقت مشکل با امورم همکاری بکنن؟ این نقطه مهم است من خدا رو میشناسم لكن آیا ما با خدا ارتباط دارم که من در وقت مشکل خداوند بمرای ممکاری بکنه برده نبرسه در صورتی که من ارتباط با خداوند گیرم که زبانم بیاد خداوند مطال جل جلوه باشه الگینه صفات مؤمنان چی هست صفات ی است که الگینه یذکرون الله کسانی که بیاد داشته باشند خداوند مطال را در قلب خود و در زبان خود قیامن در حالت استاده و قعودن در حالت نشسته و علا جنوبه و در پهلوی خود خفته. همیشه به یاد خداوند متعال می باشه و با تفکرونه في خلق السماوات والأرض باز فکر میکنن در خلقت آسمانها و زمین و باز از تفکیر در خلقت آسمانها و زمین و مخلوقات باز میین که ربنا، پروردگارا، ما خلقت حوضا باطلا خدایا ای همه دنیا را باطل به اهمیت به ارزش خلق نکردی خدایا این نکر اوف و رحیم پروردگاراتو ذات مهربان و بخشایده هستی به این شکل انسان میتونه با ذکر و با فکر انسان مسلمان است که خاموشیش فکر فکر و گفتنش ذکر باشه یعنی در فکر خود همیشه به فکر خداوند باشه در مخلوقات وقتی ایگل با میبینیم میبینیم که ایگل گل است. این گله کی جور کرده آیا امکان داره که ایره یک دست بیکاری جور کرده باشه طبعا کسی ایره جور کرده امسان ایره جور کرده که بسیار زحمت کشیده نسبت به ما هنر داشته تا مست کی برگهار ها را جور بکنه ای گلدان رو جور بکنه بای زیبایی و لطافت ایره جور بکنه ولی آیا وقتی که با شما در طبیعت میبرید؟ های را می میبینیم که با بوی بسیار زیبا، با ساختمان بسیار زیبا از این خاطر میفهمیم که ای خلقت ذات قوی و مهربان است که تمام علوم داره که میتونه همه چیز خلق بکنه. تمام آیات قرآنی را که ما شما مطالعه بکنیم ببینیم که آیات قرآنی یک تیداد آیات قرآنی است که برای ما وحدانیت خداوند مطالعه بیان میکنه. قسم دوم آیات قرآنی است که او برای ما دلیل وحدانیت بیان میکنه. یعنی دلیل متبرم او که به دلیل خداوند متعال یگانه است خداوند متعال در قرآن شریف بااد شریف میگه که لو کان فیهما اله الا الله لفسدتا اگر در ای آسمان زمین در خلقت آسمان زمین در پیدایش شما انسان ها در ای طبیعت در ای جهان اگر دو خدایی می بود تا فاسد میشدن آسمان به حالت نرمال خود باقی نمون زمین هم به حالت نرمال خود باقی نمون چرا باقی نمون به خاطر ازی که دلیل است آیا امکان داره در یک کشور دو پارتش یا دو رئیس جمهور باشه هرگز امکان نداره اگر دو رئیس جمهور در یک کشور شد از این خاطر یک رئیس جمهور یک قانون می سازد و رئیس جمهور دیگه می که قوانین دیگه را نافذ بکنه از این خاطر همیشه در بین دو جمهور تکر می و راयत به مشکلات مواجه میشن در یک ملک وقتی که نمیتونه که دو پاشا زندگی بکنه ازی خاطر در این ملک به جهان باید یک خدا باشن چرا یک خدا باشن؟ اگر دو خدا میبود حتما دو خدا قوی میبود یا کیش میگو فکر می‌روس باشه، یا کیش میگو فکر نخاید، آهلا دمی لحظه شب باشه، روز نباشه، یا کیش میفروز باشه، یا کیش میگو اینی ناصر انسان باشه، دیوش میگو فکر نخاید. یه منای که انسان خلق نکنیم ایوان حیوان باشه. ازی خواهد دبو لحظه اگر انسان اما انسان اما حیوان دبو لحظه یک انسان باشه این نظم این ترتیب بود یا خدای میگو که آسمان نهتوب بالا باشه، دیگه اش میگو فکر نخاید. زمین باید نسبت به آفتاب بلندتر باشه به این خاطر مشکلات پیدا می شد خداوند متعال عقل ما و شما را خطاب می کنه که لوکان فیهیم و آلحتون الا الله. اگر خدایای دیگی وجود می داشت غیر ذات خداوند متعال جلجاله لفظه و زمین و آسمان فاسد می شدن. این نظم درستی که در جهان است ایلالله به این که خداوند متعال جل, جل و یکیست و خدای دیگی وجود نداره اگر به عقل انسانی رجوع بکنیم ببینیم که در عقل انسانی هم دلایل بسیار زیادی است که او بر ما ثابت می شازه که خداوند متعال جل, جل یکی است. اول برید عقلی تناسب در است. تناسب در قسمت دلایل قرآنی دو قسم بود یکی دلائل به وجود خداوند خداوند یکتا بخش دوم دلایل بود به وحدانیت خداوند که خدا خداوند یعنی خداوند یکیست قسم دوم ما شما دلایل عقلی دلایل عقلی به وجود به وحدانیت خداوند خوب بخش با وحدانیت خداوند جل جلالهو داریم الف تناسب در طراحی چه مانا تناسب در تراحی؟ یعنی وقتی که شما شما به طرف مخلوقات ببینید میبینید که تمامی مخلوقات به شکل متناسب ساخته شدن مثلا اول تناسب در ساختار وجود انسان. تناسب در ساختمان وجود انسان. تناسب در ساختمانی وجود انسان. اگر ما شما به طرف وجود انسان ببینیم، به طرف وجود خود ببینیم که وجود انسان متناسب نمو میکنن مثلا سر انسان پوینسون، انسان پا انسان، انسان، انسان با هم به شکل متناسب با هم یک جای به یک شکل نمو میکنن اگر احیانا اتومه شد که مثلا یک نفر جسمش نمو میکرد و قلبش نمو نمیکرد از این خاطر خونی که وجود از این زرور داشت این خون برای وجود از این درست رسید این مشکل مواجه میشد اگر احیانا در وجود انسان دو خدایی می بود خدای سر انسان یکی می بود خدای قلب انسان ذات دیگری بود پس یک خدا سر انسانه وقتی که نمو میداد یه خدای دیگه قلبشامم وقت نمو نمیداد بالاخره وجود انسان با هزارها مشکل مواجه میشد از این خاطر معلوم میشه که وجود خود انسان وقتی که است ای است به وحدانیت ذات خداوند متعال که تمام اعضای بدن انسان به یک شکل خلق کرده دوم تناسب وجود انسان با سایر غذاها تناسب وجود انسان با سایر غذاها شما ببینیم که انسان اگر فرزند اگر انسان یک خدای می داشت و غذاهایی که جور بشد می وجاد و, و غذاها خالق از ذات دیگه میبود بنام این خدایی که انسان خلق کرده بود و اون خدایی که غذا زیر جور میکرد این غذا با جسم انسان همگون نمیبود وقتی که انسان این غذا رو میخورد اتمند در وجود شک مشکل پیدا میشد از این خاطر میبینیم که هر غذا هر میویده که ما شما میخوریم اگر سیبه میخوریم می بیبینیم که با میده ما سازش داره ناکم میخوریم با امیده ایما سازش داره گندو میره که خداوند خلق میکنه با امیده ایما سازش داره بنامه ان تمامی غذاهایی را که ما شما میخوریم خود تناسوب غذاها با وجود انسان این دلیل محکم است که خدای همه یکیست اون خدایی است او خدای که میفعلا با علم خود که ما به چی قسم غذاها ضرورت داریم وقتی که یک تکیه تفلک روز اول نو تولد میشه پیش از تولد هزیه مادرش احساس بکنه که در پستانه ازی شیر خداوند مطال خلق کرده و تمام دکترهای طب امروز بر مادمی کرن 21 تنسیه میکنه که مادرها پدرها شما اولادهای تانه شیر مصنوعی نین شیر پودری نتین چرا؟ شیر پودری هر قدر که برای طفل مفید باشه باز هم ضررهای جالبی داره اگر طفله تغذیه میکنن و میدهش تاثیر منفی میکنه. شما شیر مادر رو ببینید که شیر مادر چون در فابریکی ساخت ذات خداوند متعال جل جلاله ساخته شده، از این خاطر این شیر بسیار مناسب است با جسم اتفلک طفله که همیشه دکتران انسانا وصیت میکنن. خب معلوم میشه از که او خدایی که طفل خلق کرده، اونمون خدایی است که برای شیر خلق میکنه تا با جسم ازی متناسب باشه. میفهمین ان یا مشکل است؟ دلیل آزمون تناسب در میان امور طبیعی تناسب در میان امور طبیعی منظور از تناسب در امور طبیعی است که وقتی شما ببینید آفتاب یک بخش از طبیعت است و درخت درخت‌های میوه بخش دیگری از طبیعت هستند نباتات بخش از طبیعت هستند. در بین آفتاب و در بین نباتات و در بین درختها در بین حیوانات یک نبات تناسب وجود دارد. اگر احیان آفتاب نورش اقدر تیز می بود که درجه حرارتش اقدر بلند می که اضافه از درجه بالای, بالای نباتات می تابید فورا نباتات کنش خشک می شد بناهن خالق آفتاب و خالق نبات باید یک ذات باشه که یادت می فهمه که این ابوت چقدر درجه حرارت ضرورت داره ای گیاه چقدر درجه حرارت ضرورت داره این دیوار چقدر نور آفتاب ضرورت داره این انسان با کدام درجه حرارت میتونه زندگی بکنه از این خاطر نور آفتاب اگر چی بسیار قوی هست دانشمندان این بسیار قوی است اگر پیش کس درش میتن لیکن خداوند متعال برای انسان ها آفتاب مسخر ساخته چه قسم مسخر ساخته یعنی آفتاب در خدمت انسان قرار داده که آفتاب وظیفه خود برای انسان انجام بتن به چی اندازه؟ به مو اندازه که جسم انسان او را نیاز داره اما بلندتر از اون آفتاب حق نداره برای انسان بتابه زیرا اگر آفتاب دویگ روز صد درجه شده نور آفتاب 100 درجه باره وجود ما شما از این اندازه معینی که خداوند تعیین کرده از این زیاد شده ما شما زود میشین آفتاب فوران ما شما رو خشک میسازه و از بین میبرن اعضای بدن ما خشک میشن از این خاطر اتا دانشمنده که به فضا رفتم به مریخ و محتاب و به جاهای دیگه رفتن اونا چی میگن؟ اگرچه ما تالیستیم که به محتاب بریم اگرچه ما تالیستیم که به سیاره های دیگه برسیم لکن در اونجا مشکلی که وجود داره مشکل بلندی درجه حرارت است که احیانا در روز درجه حرارت به 200 درجه بالا میره و احیانا در شب درجه حرارت یا برویت از دو صد تحت صفر بشه این یعنی بلند رفتن درجه حرارت بسیار عالی و پایین شدن درجه برودت بسیار پایین این سبب چی میشه؟ سبب از میشه که امکان زندگی کردن انسان در اونجا میسر نیست اگر مغزی خدا فضا نورد در اونجا بکشه سرش انفجار میکنه شما دیده بوشن که اگر مغزی خدا بکشه اگر عمل غذای خاصی خدا نخوره اگر اکسیژن مخصوص خلا نداشته باشد در فضا نمیتونه زندگی بکنه از این خاطر به سری القات وقتی که در فضا میرن اکسیژن از کجا با خود میبرن اکسیژن امرای خود از زمین میبرن چون خداوند متعال جل جلاله زمین رو مسخر ساخته برای انسان ها از این خاطر انسان اینمیچه چون خداوند مسخر ساخته انسان میتونه اینجا زندگی بکنه وقتی که در جایی که گفته که مسخر نساختیم شما میتونید از نور آفتاب استفاده بکنید اما اگر خداوند بخواد که شما در جایی زندگی بکنید میتونید اگر خویا باز انسان زندگی کرده نمیتونن حتی مثلا در قسمت حیوانات شما ببینید خداوند مطال شتر چون اکثر مردمای صحرا از شتر استفاده میکنن از این خاطر خداوند مطال یکی از دانشمندا میگه یکی از دانشمدهای وترنری است میگه من در باره شتر تحقیق کردم دیدم که شتر واقعا ساختمان فیزیکی عجیب و غریبی داره که این سازش داره با اونمی هوایی که در صحرا است. اول پاهای را میگه دیگه حیوانات کس پاهایشان خرد خرده است عصب نمیتونه در صحرا به نرمال در که پر از ریگ هستن به اونجا به نرمال حرکت بکنه ولی شطر میتونه بخاطر از اینکه خلاوان پاهای شطره پاچه ها جوره جور رکره بلکه سطح جور کرده که اگر بالای ریگ میماله به ریگ گور نمیره در زیر سینه های شتال در این و در پای پایانش بگیرین که توشک شبک های بالشتای مخصوص خداوند جور که در زیر سینه شتال در دا داخل وجودش این بالشتک چی معنی دادن این بالشتک وظیفه داره که اگر شتر خواست خواسته باشه در اونم صحرایی که درجه حرارت بسیار بلند است 55 60 درجه هست که اگر در ریگ ما شما انسان ها بشینید شیش تا میتارید نسوزید برا در اون حالت شتر قرار سینه خوده زمین میزنه قرار میشینه چون اون بالشتکی که خداوند در زیر سینه ازی پیدا کرده این ای ای از شدت حرارت و از سوختن حرارت ریگ زار نجات میده از ج خاطر این تناسبی که بین حیوانات و بین طبیعت است، این خودش دلیل قوی است که ذات خداوند متعال جل جلاله، خدای یگانه است که خدای طبیعت هم است، خدای انسانها هم است، خدای حیوانات هم است، خدای نباتات هم است، خدای آفتاب هم است، خدای محتاب هم است، کل از این‌ها با یک نظم که یکی در خدمت دیگر باشن یکی بر دیگر zarar نرسانند. دلیل دگیش که دلیل سینوی ما شما اینجا گفته که دلیل سروم نظام جهان هستی با شما یا قبلی هم خوانیم که نظم،, نظم جهان هستی یا نظام یا نظم جهان هستی ببخشیم میشه نظم نشته کنیم نظم جهان هستی وقتی که ما شما ببینیم که خداوند متحال این جهان با یک نظم خاص خلق کرده. چرا در آسمان ها آرامش هست و در زمین جنگ است با خاطر خداوند در آسمان ها ملائکه ها را وظیفه داده که شما هر کدام وظیفه تان را پیش ببرید برای آفتاب امر کرده که تو این وظیفه است 24 ساعت آفتاب وظیفه خود انجام میده ولی در زمین که انسان خداوند متعال خلیفه یا سفیر یا نمائنده خود در زمین تعیین کرده انسان چون مخالفت امر خداونده میکنه در زمین آرامش نیست اگر اینا همشان اطاعت خداونده بکنه یعنی نظمی که در آسمان ها هست در زمین هم این نظمه نظمی که در آسمان ها هست اگر یک ثانیه هم محتاب بدون امر خداوند متعال حرکت کنه یا توقف کنه سیاره دیگی میه و بمرائزی انفجار میکنه تکار میکنه و انفجار میکنه از خاطر اینا 24 ساعت در حرکت هستن لکن اینا را ای حرکت منظمه کی میتن؟ ذات میتن که یگانه هست و ذات ای را میتن که خدای همه هست برای هر کس وزیفه مشخص ساخته که باید اینا کار خدا بکنن وقتی که ما فرامیم که خداوند مطال یکی است اینجا باید توحید خداوند مطال جلجل جل را بشنستیم که خود توحید خداوند مطال ایره علماء میگن که توحید خداوند مطال سه قسم است توحید یکی توحید روبوبیت است دومش توحید علوهیت است و از توحید اسما و صفات خداوند جل جاله هم منظور از توحید روبیت چیست؟ منظور از توحید روبیتی است که ذات خداوند مطال جل جاله هم این رب جل و عدگار آلمین هست یعنی خداوند مطال خالق همه چیز است. خداوند متعال مالک همه چیز است. خداوند متعال رازق همه چیز است. از این خاطر وقتی که ما و شما می خواهیم خداوند متعال بشناسیم، بر رو خداوند متعال ایمان داشته باشیم، باید برای با که خداوند متعال که الحمد رب العالمین بر رب بودن خداوند متعال جلال جلوه جل ایمان داشته باشیم. بنابراین تقویت رو رو بیت خداوند تقصیر های دارد. چی مثلا؟ مثلا ما شما در قسمت اول توحید در خالقیت خداوند متعال جل, جل و جل وقتی که خداوند میگه که رب بزر اول توحید در خالقیت یعنی خداوند متعال جل و جل و خالق است خلق کننده هست اینجا سوال پیدا میشه که احیان انسان هم خلق میکنه انسان هم یکون چیز رو جور میکنه ول فرق از بین خلقت خداوند و خلقت مخلوقات چی فرق است؟ خداوند هم یک چیز را میسازد و مخلوق هم یک چیز را میسازد. خداوند متعال وقتی که یک چیز را خلق میکنه از هیچو را خلق میکنه. انسان از چی خلق کرد؟ از هیچ. اصلا هیچ وجود نداشت خلقش کرد. حیوانات از چی خلق کرد؟ قبلاً چی بود؟ از هیچ خلق کرد. چرا که؟ آیت قرآن است که ازا اراد شیئن ان یقول له کن فیکن کن به ماهای شو یعنی دانشمندان میگن که امر خداوند بین کاف و نون است نجربه که دو کن بیشن خداوند از هیچ خلق میکنه. از این خاطر کسایی که از خالقه خداوند خبر ندارن و چی میگن؟ اول مرغ خدا پیدا کرده یا تخم خدا پیدا کرده خب ما هم خب میگیم مسلمان ها که خداوند مطال جل جلاله با یک امر خود که وقتی گفت که شو هزاران مرغ خلق میشه وقتی باز اونام میگیم که خب مرگ خلق کرده یک میگه نه من هزار دارم که یک فیلسوف میگه که اول خدا تخمه پیدا کرده بعد دیگه دیگه, دیگه, دیگه دیگه چاره نداره خاص میاد جواب بسیار خوب برش میگم که دیگه چوب شده گفتم که اون فیلسوف میگه خداوند اول پیدا کرده تخم که اگر اول پیدا او و خود که اگر بویش سر نیست دو روز بعد گنبه میشه حتما خود فیلسوف آمده وزن مرک سرازو تخم شیشته بیست روز تیر شده بازو چوچه شده بقید وزن عقل انسان علم و سائنس امیرمه که اگر تخم بایدام میشد در سر این زمین چند روز بعد این تخم گنبه میشد پس چیز روز از بی فلسفه گویی اما مخلوقات مخلوقات خلق انسان چه قسم است؟ انسان کی جور میکنه؟ انسان با خالق خلقت جریف فرق میکنه که انسان نمیتونه از هیچ یک چیز را جور بکنه این میزه انسان وقتی که جور کرده از هیچ جور کرده بلکه انسان وقتی که یک چیز را میخواه جور بکنه خلق بکنه مجبور است که ایره تغییر یا تددیل کنه از یک چیز دیگه درخت است خداوند درخت خلق کرده پس انسان درخت پاره پاره میکنه اگر یک کمک علمش پیشرفته شد نجوری پیشرفته شد اگر سابق درخت تو پاره پاره میکردن بازازو میز جور میکن آلو به شکل دیگه درخت پاره میکنن اول خود درخت ورق ورق جور میکنن ورقای بسیار نازک نازک از چوب جور میکنن بلاخره باز این ورقا را با هم شرش میکنن از این خاطر میتونن که چوکیه ها و میزه ها مشخص را جور بکنن بناید انسان در ساختمان خود با, با خداوند مشابه نیست خداوند از هیچ خلق میکنن انسان از یک چیز موجود او رو تبدیل میکنه به یک چیز دیگه که آسمانه رو خداوند از هیچ خلق کرده زمین خداوند از هیچ خلق کرده درختار رو خداوند از هیچ خلق کرده ولی انسان وقتی که تعمیر ساخته از خشت و گل و سنجور کرده از سمت کرده اگر خداوند این سمت در یک کو معدنش نباشه ما شما نمیتونیم که یک خانه سمتی داشته باشیم موضوع دوم توحید در مالکیت خداوند متعال جل جلاله توحید در مالکیت اول در خالقیت بود دو در مالکیت خب در مالکیت خداوند تو خداوند یکی است مثلا خداوند هم مالک است مالک است یعنی مالکیت خداوند مالک بودن خداوند آم است در حقیقت مالک هر چیز خداست این امانت چند روز در نزد ماست اگر خداوند مالک است ملکت خداوند امشگیست ملکت خداوند عمومی خداوند مالک همه چیز است مالک آسمان ها و زمین است ولی انسان هم مالک شده میتونه تو صرف مالک کتابچی خود هستی اما مالک کتابچی می نیستی تو مالک پول خود هستی مالک پول من هستی این پولی که فعلا در جیب شما وجود داره این پول محقتی است امروز در جیب توست سبا در جیب یک کس دیگه است تاسه همام است این دنیای دون شایر چی میگه؟ میگه تاسه همام است این دنیای دون هر لحظه بر دست غصال دیگر این میگه دنیا مثل یک تاسه همام وارست اگه ده یک دقیقه در دست توست چندقه باد امی تاسه به دست یک کسی دیگه سر خود آب میپرده از این خاطر مالکیت انسان مالکیت محقتی است مالکیت نیست. انسان، انسان این خانه هزمه هست؟ بله این صنف صنف ماست صنف ساینس هست صنف ماست آوالا. اما وقتی که سات ما پر شوه صنف دیگه که بیاه بازه صنف بازه